خدا شما رو دوست داره. این پیام قدرتمنده کتاب مقدسه. خدا ما رو به این دلیل دوست نداره چون ما خوب هستیم. و اگه بد بشیم از محبت به ما دست نمیکشه. محبت خدا اینطوری نیست. فیض خدا همیشه به ما عرضه میشه و همیشه در دسترس ماست. این چیزی که امروز ما در مورد انگیزه محبت خداوند در درس امروز از خلاله مععزه موسا در کتاب تسنیه یاد خواهیم گرفت. دوستان خوبم، به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. متشکریم که در مطالعه کلام مقدس خدا با ما هم راه هستیم. حالا بیاین در مطالعه کتاب مقدس به معلممون ملحق بشیم. در طی بررسی عهد برای سومین بار به کتاب تصنیه مراجعه می‌کنیم. ما دیدیم که کتاب تسنیه مجموعه است از بزرگترین های موسی که درست قبل از حمله قوم خدا به کنعان در کنار رود اردن برای اونها موعظه کرده. بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان اونها بالاخره تصمیم گرفتن که به ایمانشون عمل کنند و از اردن عبور کنند. به سرزمین کنعان هجوم بیارند و دارایی‌های روحانیشون رو تصرف کنند. موسی به عنوان آخرین پیغامش این موعظه بزرگ رو برای اونها کرده که در کتاب تسنیه برای ما ثبت شده است. خلاصه این موعظه ها ما رو به این کتاب نزدیک میکنه. در جلسه قبلی ما به موعظه بزرگ موسی در مورد فیض خدا پرداختیم که در شش اول باب نه کتاب تسنیه بود. به دنبال اون موعظه در باب ده موعظه ای داشتیم درباره پاسخ ما به فیض خداوند. این همیشه در کتاب مقدس مورد تاکید قرار گرفته. پس الان اسرائیل یهوه خدایت از تو چه می جز آنکه از یهوه خدایت بترسی و از همه تاریخ‌هایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر خداوند و فرایز او را که من امروز تو را برای خیریتت امر میفرمایم نگاه داری اینک فلک الافلاک از آن یهوه خدای توست و زمین و هر آنچه در آن است، لیکن خداوند به پدران تو رغبت داشته، ایشان را محبت می نمود و بعد از ایشان، ذریه ایشان یعنی شما را از همه قوم ها برگزید چنان که امروز شده است. پس قلفه دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردنکشی من نمایید. اینجا تاکید بر این است که شما چگونه به فیض خدا پاسخ خواهید داد. یعنی خدا شما رو دوست داره و او شما رو دوست داره نه به خاطر اینکه خوب هستید شما خوب نیستید محبت خدا مشروط نیست اون بر مبنای کارایی شما نیست شما میتونید در مورد محبت خدا این رو بگید خدا به هر حال منو دوست داره این تسلی عظیمیه خدا منو به هر حال دوست داره اگه شما واقعاً توسط خدا اینطور محبت میشید پس باید در مورد محبت خودتون بتونید بگید من به هر حال مردم رو دوست دارم. نه به خاطر چیزی محبت شما مشروط نیست اون بر مبنای کارهای اونها نیست در اتاق نشیمن خونهمون ما تابلو بزرگی داریم که روش نوشته خدا به هر حال تو رو دوست داره اولین چیزی که فرزندان ما وقتی وارد خونه میشن میبینن حتی وقتی دیرتر از معمول میان این تابلو هست که میگه خدا به هر حال تو رو دوست داره تابلو کوچیک دیگه یم توی حال هست که میگه من به هر حال تو رو دوست دارم من میخوام که فرزندانم هر بار که وارد خونه میشن با این دو حقیقت مواجه بشن. مهم نیست که کی و یا چطور وارد خونه میشن مهم نیست که اونها تحت چه شرایطی هستند. خدا به هر حال اونها رو دوست داره. من به هر حال اونها رو دوست دارم. این معنی کلمه فیض هست. محبت خدا مشروط نیست. اون بر مبنای عمل کرده شما نیست. کلمه فیض مثل شمشیر دودم هست. اون از هر دو طرف میبره. اولا اون میگه محبت خدا برای من و برکت او بر من بر مبنای عمل کرده مثبت من نیست این خیلی تسلی بخشه. حتی حتا اگه شما این هفته کار خوبی انجام بدید و احساس کنید خدا شما را برکت میده و شما را دوست داره چون که هفته خوبی رو داشتید هنوز هم در امنیت نخواهید بود چون از کجا میدونید که در همون کیفیت میتونید باقی بمونید شاید نتونید هفته آینده کار خوبی انجام بدید پسو شما را دوست نخواهد داشت و به شما برکت نخواهد داد پس اینجوری شما در امنیت نیستید اما وقتی کلمه فیض رو درک کنید معنیش اینه که شما نباید نگران چیزی باشید او به خاطر فیضش به هر حال شما را دوست خواهد داشت نیمه دیگرش اینه من برکت و محبت خدا رو به خاطر اعمال مثبتم کسب نمی کنم و نمی‌تونم فیض او رو بر مبنای کارهای منفیم از دست بدم دلگرمی زیادی در این هست خدا منو به خاطر اینکه خوب هستم برکت نمیده و اگر بد باشم منو به کناری پرت نمیکنه خدا منو دوست داره. عیسی منو دوست داره. وقتی که خوب هستم، وقتی که کارهای خوب می کنم عیسی منو دوست داره و وقتی بد هستم، اگرچه او خیلی غمگین میشه، با این حال باز هم منو دوست داره. این پیغام کتاب مقدس است. شما به اون چه واکنشی نشون میدید؟ آیا این به شما انگیزه نمیده؟ اون باید به شما انگیزه بده و باید به من انگیزه بده که زندگی هامون رو پاک کنیم و خیره هامون و گناهانمون رو متوقف کنیم. ما باید این خدایی رو که تحت هر شرایطی ما رو دوست داره خوشنود کنیم. این ما رو برمیانگیزه که زندگی هامون رو از چیزهایی پاک کنیم که او رو میرنجونه و بعد البته او رو خدمت کنیم و با قدردانی و پرستش به او پاسخ بدیم. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 6 آیه یک بعد از اینکه در مورد فیض خدا و نجات ما صحبت میکنه میگه از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید. در فرامین خدا توسط موسی به ما گفته شده که خدای ما چنین خدایی که حتی به باطل بردن نام او گناه هست. اساسا این فرمان ربطی به کفرگویی نداره اگرچه شامل اون هم میشه بلکه به این اشاره داره که نام خدا رو باید در پرستش ها ببریم ببینید بردن نام خدا به باطل یک گناهه پس اگر به باطل بردن نام او گناه هست پس به این فکر کنید که دریافت بیهوده فیض او چقدر گناهه وقت فکر کنید که خدا شما رو دوست داره و تمام برکتش رو بر شما قرار میده. اگر شما رو با فیض نجات میده و شما را با تمام برکات روحانی در جایهای آسمانی در مسیح برکت میده و شما اون فیض و عطیه و مهرکهار رو دریافت می کنید که برید و اونطور که شایسته یک مسیحی هست زندگی کنید و مانند یک مسیحی خدمت کنید. اگر شما همه اینها رو بیهوده دریافت کنید، اگر هرگز با اون کاری نمی کنید، این گناه گناهه. پس در باب ده یک نصیحت بزرگ هست که فیض خدا رو بیهوده دریافت نکنید. به دنبال این چند موعظه حیرت دیگه میاد. موعظه در مورد ارتداد. ارتداد یعنی ایستادن خارج از موقعیتی که خدا به شما داده. بذارید بگیم شما در جایگاهی هستید که میگید خدا در رأسه و من میخوام او اول باشه و او رو خدمت کنه. ما میدونیم دادن چنین تعهدی به خدا یعنی چی؟ اگر چنین تعهدی به خدا دادیم و در چنین جایگاهی ایستادیم اگر بعدها از این جایگاه خارج بشیم این ارتداد محسوب میشه کلمه ارتداد در زبان اصلی از دو کلمه ساخته شده کلمه ایستادن و کلمه خارج این گناه خیلی جدی هست چون که عواقبی که به دنبال اون میاد مطلقا وحشتناکه وقتی که به کتاب داوران می رسیم این رو خواهیم دید شما در سرتاسر تا سر تاریخ قوم یهود این رو خواهید دید عواقب ارتداد وحشتناک هستند موسی موعظه‌ای بسیار بزرگ و جدی در مورد ارتداد کرده او میگه اگر پسر تو اگر دختر تو اگر همسر تو اگر خویشاوند تو، اگر بهترین دوستت تو سعی میکنند تو را در خفا اقوا کنند که خدایان غیر را عبادت نمایی چشم تو بر اونها رحم نکند و بر اونها شفقت ننما البته آنها را به قتل برسان دست تو اول به قتل او دراز شود بعد تمامی قوم آنها را سنگسار نمایند تا بمیرند اگر شهری هست که مرتد گشته برو و آن شهر را ویران کن و تمام اهالی آن را بکش و هر آنچه در آن است به آتش بکش این بسیار جدی به نظر میرسه اما بعدها اگر اگر عواقب ارتداد رو بخونید اسارت بابل و اسارت قوم آشور رو خواهید دید که چرا خدا توسط موسی در مورد ارتداد این همه سختگیره اجازه ندید ارتداد در بین شما رواج پیدا کنه این مهمی در باب سیزده تصنییه هست معیزه دیگری در باب چهارده هست این معیزه در مورد دادن ده یک است. کلمه ده یک در زبان عبری یعنی ده درصد این مویزه به ما می آموزه که ده درصد از هر چیزی که داریم به خدا بدیم وقتی که به ده یک در کتاب مقدس می رسید و این یکی از اولین جاهایی که ده یک رو به ما یاد میده شما اظهاراتی مثل این رو خواهید فهمید. منظور از ده یک اینه که به شما یاد بده همیشه خدا رو در اولویت زندگیتون قرار بدید. ده یک منظوری داره. خدا به ده درصد درآمد ما نیازی نداره. پس چرا او قانون ده یک رو وز کرده؟ چون که میخواست به ما چیزی یاد بده. اولین فرمان گفته اول خدا. فرمان بزرگ گفته اول خدا. پیغام کتاب مقدس بارها و بارها به این دو کلمه منتهی میشه. اول خدا. این مهمترین چیزیه که خدا میخواد ما یاد بگیریم چطور به ما یاد میده خدا رو در اولویت قرار بدیم یک روشش اینه که به ما وسیله‌ای برای اندازه‌گیری تعهدمون میده که بدون آیا او در زندگی ما اول هست اما ما نمیدونیم پس او قانون دهیک یک رو وضع میکنه دهیک یک اینطور نیست که خدا ده درصد هر چیزی رو میخواد خدا اولین دهیک یک رو میخواد به این توجه کنید اولین دهیک. یک وقتی اونها وارد سرزمین کنان شدن اولین شهری که فتح کردن نریها بود تمامی غنیمت عریها به حضور خدا آورده شد چون که عریها اولین شهری بود که فتح شد خدا اولین چیزی رو که شما کسب می‌کنید می‌خواد او اولین ده یک رو می‌خواد نه فقط ده یک به علاوه این کتاب مقدس در عهد قدیم به ما یاد میده که اونها هدایا میدادند. هدایا چیزی فراتر از ده یک بود ده یک مال خدا بود اگر اون رو خرج می‌کردن اونها از خدا دزدی می‌کردند یا خدا رو غارت می‌کردند اونها هدایا میدادن و قربانی میکردن که هدایایی فراتر از ده یک بود داوود شرحی از قربانی به ما میده داوود گفته من چیزی رو برای خدا قربانی نمیکنم که برای من ارزشی نداشته باشه ببینید یک مرد ثروتمند میتونه به خدا ده یک بده و حتی اونو احساس نکنه اما دادن فداکارانه همه ی ما رو برابر میکنه و بستگی به این داره که چقدر شما ثروتمند هستید برای شما یک قربانی یعنی دادن چیزی که براتون به بهایی به دست اومده همون چیز برای من هم صدق میکنه چقدر باید شما بپردازید که شما رو به زحمت بندازه یا براتون ارزش داشته باشه اگه خیلی ثروتمندید باید مقدار خیلی زیادی بدید تا هدیه شما قربانی محسوب بشه به همه ما فرمان داده شده قربانی بدیم پس در عهد قدیم شما ده یک دارید هدایا دارید و قربانی دارید در عهد جدید شما کلمه ای دارید که حتی فراتر از همه این چیزاست اون کلمه مباشرت هست. کلمه مباشرت کلمه مردلاقی علاقه ایسا بود. میدونید معنی مباشرت چیه؟ مباشرت یعنی همه چیز از آن خداست وقتی من مباشر هستم مثل یعقوب زمانی که اولین بار خونه رو ترک کرد و در یکی از اولین مکالماتش با خدا ده یک نمیدم. وقتی مباشرت رو درک بکنم یاد میگیرم که همه چیز مال خداست و اینجا مسئله وفاداری و مدیریت مال خدا هست روزی من در مقابل او خواهم ایستاد و او خواهد گفت همه چیز مال من بود تو با مال من چی کار کردی؟ حالا حساب مباشرتت را به من پس بده همه ما وقتی به بود دیگر بریم بلا این سخنان رو خواهیم شنید در معزه موسا در باب ده یک تمام مفهوم دادن به خدا در کتاب تصنیه باب چهارده بر ما متمرکز شده و باز هم یادتون باشه منظور از دادن ده یک اینه که به ما یاد بده همیشه خدا رو در اولویت قرار بدیم این منظور از دادن ده یک است ده یک دادن مانند کودکستانیه که در اون خدا میخواد به ما یاد بده خدا رو در اولویت قرار بدیم وقتی که به عهد جدید می‌رسید خدا اون رو مباشرت میخونه. شما واقعا باید یاد بگیرید خدا رو در اولویت قرار بدید تا به موضوع و مفهوم مباشرت دست پیدا کنید موزه مهمی در باب 15 در مورد دادن صدقات است عهد قدیم در مورد صدقه خیلی سختگیره. موسی میگه جاهای زیادی هست که ده یک باید بره. ده یک باید به لاویان برسه. حقوق خادمان باید از این محل پرداخت بشه و به قریبانی که در کشور شما ساکنن و در سختی هستن از این محل کمک میشه. آیا تا به حال فکر کردید که خانواده خارجی رو به منزلتون دعوت کنی؟ عهد قدیم به این نونیکوکاری خیلی تأکید کرده. ما باید به قریبانی که در کشور ما ساکن هستند و از زمانهای سختی عبور می‌کنند کمک کنیم. بنی اسرائیل همینطور باید به بیوه و یتیمان کمک می‌کردند. من دیدگاه موسا رو در قوم یهود خیلی دوست دارم. او هرگز حرف خود رو در لفافه نمیزنه. او گفته شما قومی سرسخت و لجوج هستید. وقتی که موسی این نصیحت رو درباره صدقه به آنها میده میگه درباره این قور نزن. شکایت نکن. همواره مردمان فقیری در بین شما خواهند بود و به این دلیلی که این فرمان ضروریه. عیسی گفته فقیران همیشه همراه شما خواهند بود. اما منظور عیسی این نبوده که ما نباید به اونها کمک کنیم چون همیشه اونا همراه ما هستند. نصیحت موسی و ایسا بر کمک به فقیران تأکید داره. ما یک نبوت و یک فرمان در مععزه باب 17 کتاب تصنیه میبینیم. موسا یک نبی بود و به عنوان یک نبی دو کار انجام میداد. او پیشگویی می کرد و کلام پیشین خدا را بازگویی کرد. گاهی اوقات او پیشگویی یا نبوت می کرد و گاهی اوقات هم او مثل یک هواشناس روحانی نبود و فقط کلام خدا را موعظه کرد. در باب 17 موسی هر دو کار را انجام میده. اون قوم هنوز یک شاه نداشتند. اونها تا 500 سال آینده شاه نخواهند داشت. اما موسی به آنها گفت وقتی که وارد سرزمینه و عده بشی روزی تصمیم میگیری که پادشاهی بر خود نمایی. به اعتقاد من خدا نمی خواست که اونها اون پادشاهان رو داشته باشند اما موسا پیشگویی کرد که شما پادشاه خواهید داشت و خدا به شما پادشاه خواهد داد. وقتی این انجام شد و شما تاج بر سر او نهادید و او مشغول به کار شد این فرمانی است که باید او اجرا کند. وقتی که او تاج گذاری کرد و به عنوان شاه بر تخت خودش نشست، اون موقع او باید این قوانین رو کپی کنه و توسط کاهنین لاوی نگهداری کنه. کپی اون قوانین باید دائما همراه او باشه. او باید در هر روز زندگیش اون رو بخونه تا که یاد بگیره به خداوند خدای خود احترام بذاره و از او با اجرای فرامینش اطاعت کنه. خواندن مداوم کلام خدا باعث میشه که او احساس نکنه از دیگر شهروندان برتر هست. همینطور باعث میشه که از شریعت خدا تجاوز نکنه، اونو خارنشماره، و اون احترام بذاره و نیز باعث میشه که او حکومتی نیکو و پایدار داشته باشه تا بعد پسرانش بعد از او پادشاه بشن. اولین پادشاه خوب اسرائیل داوود بود. در مزامیر داوود به ما نمایی از مرد برکت یافته میده. او میگه مرد مبارک مردی که به وسیله خدا برکت یافته تصادفی و یا اتفاقی برکت نیافته. برکت او نتیجه عمل کرد او هست. او برکت یافته چون مرد با ایمانی هست. و او برکت یافته چون به کلام خدا ایمان داره. او نه تنها به کلام خدا ایمان داره بلکه کلام خدا رو دوست داره، از کلام خدا لذت میبره و شبان روز بر کلام خدا تعمل میکنه. به خاطر این او مانند درختی هست که ریشه هاش در آب قرار داره و به این دلیل خدا او رو برکت میده. داوود این دیدگاه رو از کجا آورده؟ من ایمان دارم که خود داوود مرد برکت یافته ای بود. ایمان دارم که او کلام خدا رو دوست داشت و شبان روز بر اون تعمل می کرد. او این کار رو کرد چون موسی این رو به عنوان قانونی قرار داد که وقتی اونها شاه داشتن، باید خود شاه با دست خودش پنج کتاب اول کتاب مقدس رو کپی می کرد و با اون پنج کتاب زندگی می کرد و شبان روز بر اونها تعمل می کرد. آیا اگه این قانون رو ما هم در کشورمون داشتیم مالی نمیشد؟ هرگاه که رئیس جمهوری شروع به کار می کرد اولین کاری که باید می‌کردیم بود که دو هفته بشینه و پیدایش خروج لاویان اعداد و تسنیه رو با دست خودش کپی بکنه و بعد چیزی مثل این میشد که ما میگفتیم آقای رئیس جمهور دو ساعت اول روز رو باید در کلام خدا تامل کنی باید هر روز کلام خدا رو بخونی آیا این چیز فوق العاده ای نمی اگر تمام رؤسای جمهور یا شاهان یا نخست وزیران به این ملزم می شدن؟ موسی این رو به عنوان فرمانی برای همه شاهانی که میدونست اونها خواهند داشت صادر کرد محضه قدرتمند دیگری در تصنیه باب هجده هست که چیزهای اسرارآمیز رو من می خدا چیزهایی مثل جادوگری و پیشگویی رو دوست نداره. در این محضه میگه هیچ اسرائیلی نباید جادوی سیاه به کار ببره یا از ارواح شریر کمک بگیره یا پیشگویی کنه یا افسونگری کنه یا جادوگری کنه و یا مدیوم بشه و روح مردگان رو احسار کنه. کسی که این کارها رو می کنه و به سبب این رجاسات یهوه و خدایت آنها را از حضور تو اخراج می کند زیرا این هایی که تو آنها را بیرون می کنی به غب گویان و فالگیران گوش می گیرن اما یهو و خدایت تو را نمی گذارد که چنین بکنی. گفته شده که بین آسمان و زمین چیزهای خیلی زیادی هست که انسان حتی نمی تونه به خواب هم ببینه. توجه کنید که کتاب مقدس نمیگه این چیزها واقعیت ندارند و نمیگه که این چیزها وجود دارند میگه با این چیزها سر و کار نداشته باش. دلیلی که خدا مؤکدانه این چیزها رو من کرده به این خاطر هست که همه این چیزها منبعی دارن و اون منبع خدا نیست. اگر منبع اونها خدا نیست پس اونها از کجا سرچشمه میگیرن؟ بعضیا خیلی مشتاقن که عطایا یا بعضی تجلیات روحانی رو ببینن. اونها فکر میکنند که هر پدیده روحی روح القدس هست. این ساده اندیشانه است. کتاب مقدس در جاهای زیادی به ما میگه روحها رو بیازمایید تا ببینید آیا از خدا هستند؟ منبع این روحها چی هستند کتاب مقدس به ما یاد میده که ابعاد روحانی هستند که میتونن مثبت یا منفی باشند. روحی هست که مقدسه و اون از خداست در واقع کتاب مقدس به ما میآموزه که روح قدوس خدا هست خدا به وسیله روح القدس کار میکنه و خودش رو ظاهر میکنه چیزی به نام میوه روح القدس و عطایای روح القدس است اما ارواحی در بود روحانی هستند که قدوس نیستن و از خدا نیستن وقتی که شما درگیر پیشگویی میشید، احزار روح میکنید یا جادوگری میکنید یا تلس میکنید، شما با روحی سر و کار دارید که از خدا نیست. بنابراین خدا توسط موسی قوم خدا را از درگیر شدن با دنیای روحانی منفی قویا منع میکنه. موزه بزرگی در باب هجده کتاب تسنیه هست که مربوط به نبوت آمدن مسیح هست. این یکی از بزرگترین نبوت های موسی هست. موسی گفته یهوه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید او را بشنوید موافق هر آنچه در حریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسئلت نموده گفتی آواز یهوه خدای خود را دیگر نشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم مبادا بمیرم و خداوند به من گفت آنچه گفتن نیکو گفتن نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. و هر کسی که سخنان مراکه او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد. این آشکاران بوت آمدن مسیحه، در پاسخ به دعا و درخواست اونها در پای کوه سینا که مردم گفتند نمی خواهیم دیگر این آتش را ببینیم. خدا با محبت و رحمت خودش توسط یک نبی با اونها صحبت کرد. اون نبی مسیح بود که نبی، کاهن و شاه بود. توجه کنید وقتی یهیای تمید دهنده توسط رهبران مذهبی امتحان میشد، از او پرسیدن آیا تو همان نبی هستی؟ اونها میدونستند که به نبی اشاره می کنند که موسا نبود کرده بود. او کی بود؟ واضحه که او عیسی مسیح بود. معهزه وحشتناکی در باب 19 در مورد مجازات اعدام هست. من نمیدونم احساس شما در مورد مجازات اعدام چیه. در کتاب تصنیه تمرکز بر روی جانی نیست که صب بخوره که یک نفر رو محکوم به مرک کردند که یک دوجی آدم رو کشته. تمرکز تصنییه بر روی قربانیان جنایت هست امروز ما خیلی روی مسئله مجازات اعدام تاکید می ما توی برنامه های تلویزیون یا فیلم ها اعدام ها رو با جزیات مخوفش می مثلا وقتی که حکم اعدامی اجرا میشه چقدر وحشتناکه که مطبوعات گرفتن جان انسانی رو که شش نفر رو کشته به تصویر میکشند. این صحنه های به ندرت جزیات، وحشتناکی رو که یک جانی با بیرحمی شش نفر رو کشته یا چقدر گرفتن جان آنها وحشتناک بوده رو به تصویر میکشه از نظر اونها این جانی حقوقی داره میلیون ها دلار صرف محاکمه او میشه قیافه و نام او به میلیون ها نفر شناسانده میشه و عملا او تبدیل میشه به چهره معروفی جهانی چون که او رو اعدام کنه به ندرت روی جنایات این مرد تاکید میشه در کتاب مقدس شما آموزه مجازات اعدام رو میبینید و هدف از مجازات اعدام اینه که اون شرارت از اسرائیل پاک بشه مجازات اعدام یک آمل بازدارنده هست و به این دلیل که خدا مجازات اعدام رو برقرار کرده بسیاری میگن این جنایت و غیر انسانیه من به تفاوت چیزی که امروز مردم میگن و چیزی که کتاب مقدس میگه واقفم و اون اینه که جنایت اون جاییه که باید بر اون تمرکز بشه و غیر انسانی قلم داد بشه و تمرکز بر قربانی قرار بگیره نه بر جانی موعظه در مورد ایمان رو در باب 20 می‌بینیم این جاییه که موسی گفته شما امروز برای مقاتله با دشمنان خود پیش میرید، دل شما ضعیف نشود و از ایشان ترسان و لرزان و حراسان نباشید زیرا یهوه خدای شما با شما میرود. یادتون باشه که ایمان تنها چیزیه که شما در موقع هجوم بر لشکری بزرگ نیاز دارید حالا برای اینکه نشون بدید که به اون واقعیت ایمان دارید؟ وقتی با لشکری مواجه میشید که جنگ آورتر از لشکر شما هستند کاهن شما باید پیش آمده و قوم را مخاطب سازد. ای اسرائیل، آیا شما میترسید؟ خب به خانه برگردید. ما به شما نیاز نداریم. هر کدام از شما که تاکستانی قرض کرده اید و اون رو حلال نکرده اید، شاید در جنگ کشته بشید و کس دیگه ای تاکستان شما را کنه. او به خانهش برگرده. آیا کسی هست که نامزد کرده و به نکاح در نیاورده؟ او روانه شده و به خونه خودش برگرده. مبادا در جنگ بمیره و دیگری نامزدش رو به نکاح در بیاره. آیا کسی از شما هست که خونه یه تازه ای ساخته و اون رو تخصیص نکرده؟ اون هم برگرده و به خونش بره. مبادا در جنگ بمیره و دیگری اون رو تخصیص کنه. ما به شما نیاز نداریم. یادتون هست جدون از این موعظه وقتی که آزم جنگ با مدیانی ها بود استفاده کرد. او با و دو هزار نفر به مقابله لشگری لشکری هزار نفره میرفت. خدا این نبوت موسا را به یادش آورد و به او گفت جد اون بلند شو و به این قوم بگو هرکس هر کس میترسد به خانه برگردد. اون بلند شد و این کار رو کرد. و دو هزار نفر به خانه برگشتن. فقط ده هزار نفر برای جدون ماندن. و خدا گفت باز هم قوم زیاد ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را برای تو بیازمایم اگر تو با ده هزار نفر به جنگ بری فکر خواهی کرد که به خاطر ده هزار نفر بر مدیان پیروز شدی. باید اونها را غربال کنی. خدا گفت هر که آب را به زبان خود بنوشد چنانکه سگ می نوشد او را تنها بذار و همچنین هر که بر زانوی خود خم شده بنوشد به او بگو که آن طرف آب منتظر باشه. تو به با اونها نیازی نداری. 9700 نفر اونطور که خدا گفته بود نوشیدند خدا گفت اونها را به خانه بفرست تو به اونها نیازی نداری تو فقط به این 300 نفر نیاز داری که با کف دست نوشیدن. 300 نفر کمتر از یک درصد از تعدادی بود که جد اون در ابتدا با خودش آورده بود استراتژی خدا اونجا چیزی مثل این بود مسئله تعداد نفرات جد اون نیست مسئله مهارت ها و توانایی ها و جنگآوری اونها نیست بلکه مسئله در واقع اینه که خدا با اونها بود خدا همونطور که میتونست با سی و دو هزار نفر باشه، میتونست با 300 نفر هم باشه. فقط کافی بود که اونها به این ایمان داشته باشند که تنها امید اونها اینه که خدا همراه اونهاست. خدا توسط موسی این چالش عظیم رو بنا نهاد داوود به این ایمان داشت. تمامی اون مردان خدا به این ایمان داشتند. داوود گفت جنگ از آن خداوند است. خب یادمه یه روز همراه تعدادی از خادمین در یک پایگاه نظامی که بزرگترین و بهترین جتهای جنگی رو داشتن غذا میخوردیم. بعد از غذا اونها کارایی و قدرت آتش این جتها رو به ما نشون می دادن. ما داشتیم یکی از این هواپیماهای عبرقدرت رو نگاه می کردیم که یک خادم پروتستان با آرنجش به من زد و گفت اعتماد ما بر خدا هست. آیا واقعا ما به این ایمان داریم؟ آیا واقعا به خدا اعتماد داریم؟ یا ما به موشک ها و قدرت آتش خودمون اعتماد داریم این موضوع موعظه باب 20 است حالا نصایح در مورد جنگ های نابود کننده رو بیشتر در کتاب یوشه خواهیم دید و بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد اینها مشکلات الهیاتی بسیاری از مردم هستند اما اگر واقعا شما قرار جنگی داشته باشید به نظر من تنها جنگی که درسته جنگی که نابود کننده باشه ژنرال مکارتور گفته فجایع و رنج جنگ وحشتناک هستند تنها راهی که میتونید جنگ رو توجیه کنید اینه که اون رو به سرعت به پیروزی برسونید و نتیجه قطعی بگیرید در کتاب یوشع چون اونها از خدا اطاعت نکردند و تمامی اون مردم رو نابود نکردند بعدها خودشون در کتاب داوران هفت بار مغلوب همونها ها شدند پس این یک عامل هست یک معزه بزرگ در جنگهای براندازنده ما در کتاب تسنیه با کلمه فیض آشنا شدیم همچنین با کلمه زیبای رحایی آشنا شدیم این قانون ولایت در کتاب تصنیه 25 تصویر زیبایی از ناجی ما ایسای مسیحه یادتونه که گفتیم تمام کتاب مقدس مربوط به ایسای مسیح است. کتاب مقدس یک کتاب آموزش علوم و تاریخ تمدن نیست اون تاریخ رستگاری و بازخرید کننده ای هست که توسط او رستگار شدیم این رستگاری چی بود و این بازخرید کننده کی بود و کی آمد؟ اولین باری که شما با مفهوم فدیدهنده یا رسکاری مواجه میشید، اون یک قانون محلی هست. اون شاید یک قانون کاری در لاویان و یک قانون محلی در تصنیه هست. اما اگر شما این واژه شرعی رو که رسکاری نامیده میشه درک کنید، اون موقع شما میتونید مفهوم روحانی یا الهی رسکاری رو درک کنید. این بخش کوتاه در باب 25 پس زمینه شگرفی برای کتاب روت، و مفهوم کلی رسکاری در کتاب مقدس هست در پایان کتاب تسنیه هم مانند پایان کتاب لاویان و یوشه شما این نصیحت عظیم رو میبینید که میگه از کلام خدا اطاعت کنید باز هم این تاکید قطعی کتاب تسنیه هست و کتاب تسنیه به این ترتیب پایان میگیره این معیزه ها موسی رو به بهترین وجه معرفی میکنند بعضی از بزرگترین معیزه هایی که دنیا تا کنین شنیده در این باب پایانی کتاب تسنیه است که موسا وعده برکت خدا رو بر قوم یهود میده به شرطی که از کلام خدا اطاعت کنن و اگر از کلام خدا اطاعت نکنن وعده لعنت خدا را به اونها میده. موسی گفت من اینک دو راه در مقابل شما قرار میدم. زندگی یا مرگ و امیدوارم که زندگی رو انتخاب کنید. خب داریم به پایان کتاب تسنیه میرسیم و میخوام بگم که مطالب زیادی در کتاب تسنیه هست خیلی بیشتر از اون چیزی که ما خلاصه کردیم اما من سعی کردم که به شما کلچینی از اون بدم عزیزان کلام خدا باز هم به ما میگه که ما باید عاملان به کلام خدا باشیم نه فقط شنوندگان تا برنامه بعدی خدای من به شما جسارت و ایمان بده که امروز و هر روز زندگیتون از اون اطاعت کنید تا بیشتر در ایمانتون رشد کنید متشکرم که دانشجوی وفاداری برای کلاس های دانشکده کوچک کتاب مقدس هستید.